بسم الله الرحمن الرحیم درس اول درس کتاب بلاغت الواضحه رو آورد گفت کلام بر درست بله. یا خبر است یا انشا الان میاد میگه که هدف از القای خبر چه هست چون در درس بعدی میاد روی انشا هم چکار میکنه بله. بله بعدش انواع خبر رو میاره بررسی میکنه روی خبر چند درسی بحث داریم بعدش میاد و روی انشاء در این درس میاد هدف از القای خبر رو توضیح میده بیاید روی قاعده سیوم سی کتاب که این اهداف القای خبر رو اینجا توضیح میده اصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضی اصل در خبر این است که برای یکی از این دو هدف زیر القا بشه یک إفادة المخاطب الحكم الذي تزمنته الجملة إفادة كردن مخاطبة ون حكم روك جملة متزمنة ونه ون حكم روك جملة دربارش داره ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر اين حكم كشما مخاطب ون حكم رو برسوني بش ميان فائدة خبر إفادة المخاطب أن المتكلم آلم بالحكم غرض دومی این است که شما میخوایی مخاطب رو بگی آقا متکلم نسبت به این حکمی که داره میگه آگاه خود, متک خود مخاطب نه ببین مخ متکلم داره مخاطب رو میگه که متکلم به این حکم چیه؟ آگاه ویسا مظلکا لازم الفائده به این چی میگن؟ به اون میگفتن فائده تالخبر؟ تا بینگل لازمل ال... فائده پس اینا دو تا غرض اصلی بودند اما وقد یلقى القاعده سيكم قد يلقى ال... الخبر اخرى الاخرى تفهم من السياق خبر برای اغراض دیگه‌ای هم چی میشه به اصل بودند استادون خبر بله میگه خبر به خاطر اغراض دیگه‌ای هم القا میشه که از سیاق فهمیده میشن که از چه فهمیده میشن منها ما يأتي الجملة؟ أس استرحام إظهار الزعف إظهار التحصر الفخر الحفظ السعي والجد والجد ها؟ فس در أمثلة برا حريكي أزينا مثالها برده بخاطرين أمثلة إن درس خير زيادا الغرز من إلقاء الخبر غرز إلقاء الخبر جاس الأمثلة بولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيلي وأوحي إليه ف سن و اسلام صلی الله علیه و سلم عمول اومد در سن تیحلم بهش وحی شد و در مکه سیزه سال ماند و در مدینه ده سال. خب اینجا در این غرز از القایی خبر چی بوده؟ فایدهای خبر بوده چرا؟ چون میخواسته به مخاطب حکمی رو که در جمله اومده افاده کنه بخواسته که این سخن رو به یاد بده؟ به مخاطب کان عمر ابن عبدالعزیز لا خودو من بیت المال شیعن ولا يجري على نفسه من الفيء درهمن عمر ابن عبدالعزیز از بیت المال چیزی رو نمی و برای خودش از فئی درهمی هم بر نمی داشت در این مثال، فعض دیگه میدونید؟ بله جان؟ آره، در این مثال بازم فائده خبر است داره به مخاطب میگه که آقا، عمر ابن عبدالعزیز همچنین انسان زاهدی بوده این انسان پریزگاری بوده اما بریم مثال بعدی لقد نهضت من نومك اليوم باكرا امروز از صبح از خوابت زود بیدار شدی خب نمیخواد که به مخاطب حرف سخنی بگه چون مخاطب خودش میدونه که صبح زود بیدار شده پس اینجا لازم الفائده هست اه؟ یعنی داره به مخاطب میگه که من میدونم که تو امروز صبح زود بیدار شدی انت تعمل في حديقتك كل يوم خب شخص داره هر روز کار میکنه گوینده داره بهش که تو هر روز در باغت کار میکنه اینها لازمول فاضل این غرض دوم یکیش بود فائده الخبر یکی لازمال اما بریم مثال بعدی قال يحيى البرمكي و يخاطب و الخليفه هارون الرشید یحیای برمکی خلیفه هارون الرشید و مخاطب کرده اینجوری بهش میگه ان البرامكه الذين رموا لديك بداهيه همان برامکایی که برامکایی نه؟ قمنا که در نزد تو انداخته شدند بداهیه به گرفتاری سفر الوجوه علیهم خلاء المذله بادیه چهرهاشون زرد شده و لباسهای مذلت برشون هست ها این حرفو میگه برای بخاطر چی؟ استرحام این حرفو آگاه مبال یعنی اینجا در واقع نمیخواد که هارون رشیدو بگه که من به حال اینا آگاهم بلکه اینو میخواد طلبه رحمت بکنه که آقا این برامکه اینجوری هند حالتشون به این شکل و این شکل قال الله تعالی اما مثال بعدی حکایتاً عن زکریه علیه السلام رب اني وهن العظم مني وشتا على رأس و شیبا من زعیف شده اما مهم سفید شده این اظهار زوف داره میکنه وگر نه نمیخواد به مخاطب خبری بده و نمیخواد که بگه که من میدونم ها مخاطب پروردگاره بلکه اینجا داره اظهار زوف میکنه این سیاق می از سیاق جمله میفهمی از از سخن علامت نداره دیگه شما مثلا تشخیص میدی که این آقا کجا داره به من خبری میده کجا داره اون دو تا که فهمیده میشن ولی در جاهای دیگه مثلا از روی ادبیاتش حتی از روی تونس هداش شما داری تشخیص مزید که این داری چکار میکنه؟ به غرزی دیگه داری این سخنو میکه به غرزی ديگه داری این سخنو قال احد الاعراب یرثی ولده یکی از عرب در حالی که ولدش رو گفت گفته یا یکی از عرب در رسای ولدش گفته لما دعوت الصبر بعدك والاسا اجاب الاسا طوعا ولم يجب الصبر وقتی که بعد از رفتن تو صبر و اندوه دعوت دادم اندوه از روی اطاعت اومد و اجابت کرد یعنی اومد سراغم ولی صبر اجابت نکرد یعنی منظور داره میگه که من بعد از رفتن تو نمیتونم صبر کنم اما دارم جوش میزنم این از کدون نه هنوز لوز مونده اظهار تحصر میکنه فا من ينقطع منك الرجاء فانه سيبقى عليك الحزن ما بقی الدح اگر چه که از خود شخص تو امید بریده است یعنی تو دیگه بر نمیگردی ولی حزن تا زمانی که دهر وجود داره باقی خواهد ماند ها جالب داره گفته داره اظهار تحسر میکنه داره اظهار چی میکنه قال عمرو بن کلثوم عمرو بن کلثوم گفته اذا بلغ الفطامه لنا صبيون تخرو له الجباب رساجدينا ها این داره فخر میکنه عمر ابن کلسوم گفته زمانی که بچه ای از ما به سنی برزه که از شیر او رو میگیرند اضابل اغال فتامه لنا سبیجون سبیجون فائل الفتامه مفعوله زمانی که برسه از ما بچه ای به سن فتام تخیر له الجباب روساجدینا گردن کشان براش براش سجنه میگفتن یعنی ما این قد قوی هستیم ما داره فخر میکنه اینجا دیگه داره خبر نمیده که داره چکار میکنه؟ نه طاهر ابن الحسین الال عباس ابن و قد استبطعه فی خراج ناحيته. طاهر ابن بعباس ابن موسى نوشت چون در فرستادن خراج دیر شده بود دون که آغای عباس ابن موسا امیر بود و اخو الحاجات من بات نائمان نیازمند کسی نیست که شب بخوابه یا شبش رو سپری کنه در حالی که چی هست؟ خواب است ولیکن اخوها من یبیتو علا وجل اما اونی هست که شب و سپری میکنه بر ترس داره تشویقش میکنه که آقا به جمب تلاش کن زودترین خراجه رو چکار کن؟ جماعی کن بفرست خب تا انجای کار کافی است، ان شاء الله جلسات بعدی در صبحه.